الصلاة و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین لا لاسی ما الله فی الارزین اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام و يعود السلام سبحان ربک رب العزت عما و یسفون على المرسلین والحمد الحمد لله رب العالمین السلام علیکه ایوه النبی و رحمت الله و السلام على الامت الحادین المهديين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 السلام علیه ابن الخصان زین العابدين، السلام علیه محمد ابن علي باقر علم النبي، السلام علیه جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیه موسى ابن جعفر النال السلام علیه علي ابن موسى الرضا، السلام علیه محمد ابن علي النجباء، السلام علیه علي ابن محمد النهدي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في ها ساعة ساعه و فی کل ساعه ولی وناصر حافظ وعينا حتى و ناصر و دلیل و, حتی و, ارزکت و, و اللهم اجل ولی کالفرج و من انصاره و اعوانه بالله من الشيطان الرجيم و اذا سالك عبادي عني فاني غريب ان اجيب و دع و تداعي ازاد دعان هل يستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعوا خب ما سه جلسه دیگه تا محرم داریم جلسه آینده که شام غدیره و ان الله هفته آینده برنامه ویژه جشن غدیر خواهد بود لذا هفته آینده برنامه تغییر خواهد کرد من این جلسه یه مقداری با پیرامون همین آیه، بحث خواهم داشت و بیاری خدا با انایت مولایمون امام و روحی و العالمین لطراب مقدم حلفدا الله آخرین جلسه زلحجه یعنی بعد از شب جمعه هفته بعد که هفته آینده که جشن قدیر هست هفته بعدش این آیه رو جنبندی میکنیم دیگه 7 جلسه فکر کنم برای این آیه بس خوش محرمم که برنامه‌شو بعد از خواهم کرد خدمتون ان شاء الله بعد از محرم و تعطیلات که جلسه شروع خواهد شد ادامه آیات رو پی خواهیم گرفت خب آیه شریف در خصوص دعا که یکی از ویژگی های مکتب انبیا و اولیاس در قرآن کریم بر روایات معصومین علیهم السلام تاکید بسیاری بر دعا و این اظهار کوچکی و بندگی و ابراز نیاز و درخواست به درگاه حضرت احدیت مطرح شد مطالبی که گفتیم کاری اونا نداریم اگر بخوایم یه جمبندی کنیم در این حد که اگر خداوند دستور میدهد دعا کنید معصومین به ما یاد میدن اهل دعا باشید این دعا کردن غیر از خواستهامون رو از خدا بخواهیم که خداوند از قدرت غیبی خود و انایت الهی خود ما را برخوردار کند این یک جنبه غذیگه است ولی به نظر می رسد با توجه به آیات و روایات جنبه برتری هم دارد اون جنبه برتر برای کسی که دعا می کند اگر به حاجت خود هم نرسد بر فرض خداوند جواب و او را هم ندهد که چنین نیست در این حال به نتیجه و ثمره می میرسد که دعا اون کمال و ارزش رو ایجاد میکنه اون چیست بقا و تداوم ارتباط صحیح با پروردگار که در اثر تداوم ارتباط با خداوند برخوردار از فیوزاتی ما فوق فیض اجابت درخواست باشد دقت بفرمایید ما یک جنبه جسمی داریم یک جنبه روحی اگر به جنبه جسمی وجود من کنیم یک سلسله عوامل باعث سلامتی و نشاط و فعالتر شدن جسم و آثار جسمی است مثل هوای سالم آب زلال و گبارا و مواد غذایی سالم غیر آلوده اگر به شما بگویند سعی کنید در هوای سالم بیشتر قرار بگیرید اگر آب می یا نوشیدنی استفاده می از آب زلالی که آلوده نیشت من بشید یا غذاهایی که آلوده نشده و اون خواص طبیعی خود رو داره با اون غذاها در ارتباط باشید نتیجه و ثمره بودن در یک محیط سالم از نظر هوا و از نظر آب و از نظر غذا شادابی و سلامتی جسمیه به هر نسبتی که شما از این فضای هوای سالم دور شدید امکان آلوده شدن جسمی براتون وجود داره حالا بیان تو دنیای روان ما که حقیقت وجود ما روح و روان ماست روح و روان هم در چه محیطهایی قرار بگیرد در چه فضایی واقع بشه که به اقتضای اون جو و اون فضا حالت روحی پیدا کنه همینجا تو پرانتز ارز کنم اگر این تشبیه رو به هوای سالم و آب گبارا کردم اینن در تعابیر روایی ما و در تعویلهایی که از معصومین رسیده مثلا اگر کسی خواب ببیند در آب زلالی قرار گرفته چون خواب پرواز روح است و روح در عالم روحی حقایق را اگر در قالب مادی می‌بیند حاکی از یک حقیقت ماوراء ماده است آب زلال در خواب در زبان روایات و معبرین خواب تعویل شده به علم اگر آب آلوده باشه علم آلوده است علم التقاطیه اگر آب زلال رو در خواب ببینه در آب زلالی قرار گرفته است این تش تعبیر شده تعویل شده به علم سالمی که گیرش میاد اگر در خواب ببیند در باقی سبزه رو از محصولات سرسبز کشاورزی و گیاهی قرار گرفته تعویل شده که درجه ولایتش قوی تر خواهد شده انشاء الله اگر این تشبیه رو کردم با توجه به اونچه که روایات ختمیده دارم ارزم کنم حالا بیان در عالم روحی هم روح ما در چه فضایی شیر میکنه یک زمان روح حتی در عالم خیال خیال روحی در عالم تصورات ذهنی در عالم بگومگوهای تبادل نظری و اندیشهای روح در عالم شکم شهوت های شهوانی مقام منیتها خودخواهیها همش دور میزنه به اقتضای دور زدن روح در این فضا حالت روحی چه حالتی میشه حالت روح گیر کردهی در عالم شهوات و به همین جهت هم میگن هرچه روح در فضای معنوی بیشتر سیر کند خوابی که میبیند خواب عالم معنا بیشتره و هرچه روح در عالم شهوانی بیشتر سیر کنه رؤیاهای او رؤیاهای شهوانی بیشتر میشه یکی از عواملی که روح را در عالم معنا میبرد دعاست اینه دقت میفرموی؟ لذا حتما چیزی بخوایم دعا کنیم آقا مشکلی دارم دعا کنم حاجتی دارم دعا کنم یه گرفتاری برام پیش اومده دعا کنم حالا حدیث رو براتون میخونم هدیث حدیث بیان میکنه. میگه چرا قبل از که مشکل پیدا کنی دعا نمی کنی؟ حتی روایت در حالا میخونم که وقتی بنده ای دو گرفتاری شد دعا میکنه سرشتگان الهی میگن امشب از کافی حدیثشو میخونم فرشتگان الهی میگن این صدا خیلی برای ما آشنا نیست این تا حالا کجا بود چطور تو مشکل قرار گرفت صداش در اومد نالش بالا اومد چرا قبل از این مشکل صدا یارب یارب بالا نمی اومد اصلا ما حاجت رو فعلا در نظر نگیریم مشکلاتمون رو فعلا در نظر نگیریم خود این که با خدا حالا این تعبیر رو به کار ببرم خوشک مقدسی در نیاریم بگیم هر چیه؟ با خدا عشق بازی کنید خدا یاد دوستید دارم حالا به تعاویری که معصومین به ما یاد دادن شما مناجات مثلا 15 امام سجاد علیه السلام رو توجه کنید این همه نقمه های محبت و دوستی و عشق و انس و الفت با پروردگار عالم در خیلی از این عدیه اگر دقت کنی. رابطه ای که با خدا مطرح میشه نسبت به چه که از خدا میخواد اون قوی تره نه اینکه نخواید اونم عرض میکنم حتی داره که حاجتی که دارید اسمم ببرید کلی هم نگید اب نداره و ای خوبه چراشو ارز میکنم اما فعلا دارم اصل دعا رو ارز میکنم اصل دعا روح را در عالم معنا سیر دادنه اون حقیقت وجود انسان رو تو عالم ملکوت بردنه وقتی خدا خدا میکنی وقتی رب رب میگی به خصوص موقعهای خاص دعا که اگه رسیدم امشب بنادارم روایات رو بخونم انشاءالله مثل سهر مثلا عجیب روایت داره سهر پاشید با خدا حرف بزنید هر ظهر زبال ظهر با خدا حرف بزنید دم از آن مغرب با خدا حرف بزنید و از و اوقات رو فرموده سهر یعنی اون موقعی که از قیل و زندگی خودتونو کنار کشیدی با خدا سخن بگید این سخن گفتن با خدا روح رو میبره در عالم معنا روح که رفت در عالم معنا کم کم اونش معنوی پیدا میکنه من اجازه بدید دو تیکه از نحجل در این رابطه خیلی سریع و گذرا احتمال میدم به احتمال خیلی قوی اکثر شما با این دو قسمت نهد البلاغه آشنایی و شایدم حفظ باشید <تصفح> ولی من به جهت کاربردش نسبت به این بحث ناچارم که اشاره بکنم در بخش کلمات قصار نهد البلاغه شماره 147 همون مطلبی که معروف بارهام امیر المؤمنین علیه السلام دست کمیلو گرفتند از شهر کوفه بیرونشون بردن در دل دلی با او مطرح کردند تا آنجا که حقائق در این سینه جمع شده از تنگی میکند افراد لایقی نمی بینم که به اونها تحویل بدم چون مردم سه دستند یه عده فعالن زیرکن تیزن کوشایند ولی آدمای بی برای دنیاشون انقدر فعالن اینا که به درد علی نمیخورن دسته دوم آدمای متدینیان دین براشون مطرح معنویات براشون مطرحه ولی آدمای کودن بیحال آدمای بی فکر زیرکی و اون فتانت و اون بسارت و اون معرفت و اون هوشیاری و اون تفکر که بناس داشته باشن ندارن اینام که دل علی رو خون کردن دسته سوم که علی دوست میداره راجعه این دسته سوم آخر این قسمت فرمایشات ایشون هست با جناب کومل اینجا اجازه بدید من یکی کش رو بگم میگه اولائکه یعنی این دسته و والله الاغلون عددن خیلی کمن قرآن هم و اکثر هم لا يعقلون و کذا و کذا و کذا اینه خیلی کمن ولعظمون اندالله قدرا اما در پیشگاه خدا از نظر قدر اندالله خیلی عظیمه خیلی بزرگه يحفظ الله بهم هم خججه و بیناته من با خیلی از بزرگان راجب این کلمات غصا مشورت کردم نظر خواستم بحث کردم و نظر گرفتم و بسیاری از شروع نحض البلاقه راجب این مطلب دیدم که آیا این فقط راجب امام عصد علیه السلام و اعمه اطهار علیه مسلامه یا پیروان راستین امامان که امیر المؤمنین میخواد انسنها به اینجا برسند همه اونهایی که دقیق بودن گفتن نه ائمه که شعرشون اجله حضرت داره سه دسته میکنه یعنی ها در این عالم سه دستن یه دسته اونجوریان یه دسته اونجوریان یه دستی اینجوری میشن من میخوام شیعه ها اینجوری بشن امام که شعرش اجله لذا اینا رو داره حضرت بیان میکنه اینو توجه داشته باشید یحفظ الله بهم و حججه و بیناته خدا به وسیله اینها حجتهاش حفظ میکنه بیانات و اون استدلال و اتمام و رو برای مردم تا میرسه به اینجا منظورم این جمله حجم بهلم الالمون حقیقت البشیره اصلا تمام وجود اینها را شناخت معرفت و علم جوری گرفته اصلا علم اینها حجوم آورده دقت بکنید هجوم رو در کجا میگن در اون حالتی که انسان در یک شرایطی واقع میشه از هر طرفی به طرفش مثل این که دارن سرازیر میشن اینه میگن هجوم فرض کنید یه موقع ما اینجا هستیم یه شیر سماوری باز یه مقدار آب جریان پیدا کرد یه وقت سیل به طرف ما میاد یه وقت یه نفر مارو میبینه میدوه میاد یه وقت یه عده‌ای به طرف ما دارن مثلا میدوان میان هجوم رو کجا میگن عبارت مولا رو دقت کنید حجم دهیم العلم و علا حقیقت الوسیره اون چنان علم شناخ معرفت به طرف اینها هجوم آورده با اون حقیقت بسارتی که بناس پیدا کنه و با روح روحل یقین مباشرت رو در شرح دعای ابی همزه من قبلا توضیح دادم گفتم مرحوم الله منطقی آمولی رحمت الله علیه یه تعبیر قشنگی داره من این تعبیر رو از ایشون گرفتم میگم ایشون در علم اخلاقشون این تفسیر رو کرده بودن فرموده بودن شما یک وقت مثلا یه بهی رو قاچ میکنید میزنید تو شکر میخورید یه وقت به رو با شکر تو آب اونقدر می توشونید مربا بشه این شیرینی به تمام منافذ این به یا سیب نفوذ میکنه این میشه مباشرت یعنی به همه منافذ وجودیش از او میگیره باشر روح الیقین این انسان که حجم به عل علم علا حقیقت الوسیره در اثر اون بسارتی که پیدا میکند تمام شراشر وجودش را جنبه یقین در عالم روحی فرا میگیره چه میشه ی عد اینجورین چرا بعضیا هی چهار تردید هی دوچار شک هی دو چهار وسوسه فکریشو میگما نه عملی در عالم فکری چهار تردید و وسوسه است این ضعیفه ولی وقتی در عالم معنا و فکر اون چنان عنس پیدا کرد با عالم معنا میگه شما چی داری میگی تمام وجودم رو گرفته حقایق عالم معنوی تمام وجودم رو به گونه ای حقایق ملکوت پر کرده که در مرحله روحی به این یقین رسیدم تا به چی میشود وستلانو و مستعوره المطرفون اونچه که آدمای خوشگذران پرمسرط وابسته به دنیا براشون سنگینه برای اینا راحته یعنی مثلا فرض بفرمایید عنوان مثال من مشتاقی بحث میکنم حدیش مولا کلی میگه مثلا برای یه های خیلی خوشگذران روزه یکم سختو برای اونا خیلی راحته برای یه آدمای وابسته به دنیا آقا چشم از نامحرم بپوشید وای من توی شهرستانی بودم یه بنده خدایی به من برخورد کرد گفت آقا شما این آقای نباتی یا آی قمبری که در شمیران هست میگن که دعا میده و افراد رو فوت میکنه ایشون میشناسید گفتم بله میشناسم گفت... گفتن که برای مشکلات خوبه بهشون مراجعه کنی اما ایشون یه شرطی گذاشته خیلی سخت من فکر کردم چی میگفتن چی گذاشته من نشنیدم گفت ایشون گفته پیش من بیاد که چهل روز متوالیان نمازش قضا نشده باشه مگه میشه 40 روز صبح نماز ما قضا نشده نو بر خدا ما تو چه می هستیم چهل روز پشت سر هم من نماز صبحم غذا نشه مگه میشه یعنی حالا نماز واجب شما ببینید میگه امیرالمومنین داره در اینجا میگه وقتی روح رفت تو عالم معنا وقتی اون مباشرت روحی با عالم معنا پیدا کرد اون چه که برای افراد راحت طلب دنیا سخته برای اینا خیلی راحته یه تعبیر خودمونی بگم شما شنیدید حرف درستی هم هست میگن کاری را که عشق انجام میده چیزای دیگه نمیتونه انجام بده حرف درستی هم هست مثلا کسی عاشق میشه حالا تو عشقای مجازی من بگم همین عشق مجازی آقا پسری عاشق دختری شده عاشق مدل یا اتومبیلی شده عاشق یه ساختمونی شده قبل از این اشق توان این همین تو مرحله اشق مادی فعلا توان جسمی و مادی و دنیاویش برای فراهم کردن امکانات جهت نیل و معشوق خیلی کم بود ولی وقتی عاشق شد خوابش دیگه کم میشه اضافه کار میکنه تا من این اتومبیل رو دوست دارم باید بخرم توان جسمیشو بالا میبره میگن آقا این تا قبل از این مرحله اینجوری نبود چون عشقش در اون وادیه یعنی روحش رفته تو اون وادی توان هم برده تو اون وادی خدا رحمت کنه مرحوم مهندس مصحف رو ایشون نقل میکرد حدود سی سال قبل پنج سال قبل ما یه سفری از اینجا دشت میرفتیم اصفهان قم رسیدیم عده از مهندسین دانشگاه تهران بودیم میشون نقل میکرد گفتیم بریم دیدن علامه طباطبایی رحمت الله علیه خب دستاجام راستیم خدمت مرحوم علامه اون رجل الایی با اون علم و اون تقوا با اون ز و پیرمر در میجدی لرزان میومد. خودش درو وا میکرد خودش چای میگفت این حرفا برای اینا دیگه توی وادی دیگری بود اون ما یه ایده مهندسین دانشگاه تهران دانشو خدمت مرحوم علامه نشستیم. نشاستیم آقا اومدین ما رو موعظه کنید مرحوم سرشان رو پای خیلی فکر کرد اونایی که از نزدیک دیده بودن چون همیشه در حال تعمق و تفکر بود و به راحتی هم حرف نمیزد. مگه دینت رو میخواستی گفت یه مقداری فکر سرش بلند کرد. گفت من که کوچیک‌ترم شما رو موعظه کنم. یه حدیث از امام صادق علیه السلام براتون می‌خونم. این حدیث رو برای ما خون. ما رو مصحف یادم نمیره میگه به قدر این حدیث به ما یه داد که ما تو کارمون فعال شدیم. گفت امام صادق علیه السلام فرمودن حدیث در وسایل شیعه اومده، جای دیگه‌ام اومده. ما ضعف بدنمون، اما قویت علیه نیت. بدن ضعیف نمی شود وقتی نیت قوی باشه ای همی بیان خیان امام صادق علیه السلام نیت چیه؟ یعنی انگیزه روانی شما انگیزه نیت از کجا برمی خیزه؟ امام صادق علیه السلام تو نصلاح و شریعه هست دیگه هم هست نیت و تبدو من القلب نیت از دل سرچشمه نیگیره علا داره معرفت به ای که معرفت داری و تختلف و مختلف میشه بلا حسب اختلاف المعرفت اختلاف, اختلاف معرفت چگونه است؟ اختلاف نیت پیدا میشه نیت قوی شد نیت خدا نیت معنویت یادش به رفقا بودن تو تل زینبیه گفتم اینجا باید شعر رو بخونیم براشون خوندم چند روز قبل گفتم تو تل زینبیه جاشه نیت زینب سلام الله علیه خداست تمام وجودش اشت به امام حسین علیه سلامه ولی شب 11 هم اونجا دم از نزدیک ببینه اون تل زینبیه اون خیام عبی عبدالله این گودال قتلگاه این میدان حرب و معرکه درگیری اما زینب سلام الله علیه هم شب چه میکنه که باشد که افتاده بر روی خاک دو سه بیترون میکنم اونجا همش خوندم بر رفعه که باشد که افتاده بر روی خاک که آیت از اون ناله سوزنا ملائک دهند از سما این این دخت میر عرب زینب است به که گرم نماز شب است براز و نیاز و بسوز و گداب تو گویی که زهرا و در نماز چنان است که هرگز ندیده غمی زیاد خدا نیست قافل دمی بلی خوش دلو دختر مرتزاست زدل راضی و بر رضای خداست یا اگر اون شعر زیبای راجب ابو سمام سائدی و نماز ظهر آشورا باز یادش بخیر بین الحرمین برای رفقا خوندم از حرم از طب به حرم مام حسین گفتم اینجا باید عرض ادب کنیم وقتی میگه روز آشورا میان گیردار یک تن از اون بی بیقرار بود سمام سائدی بود نام وی کرده راه عشق را مردان طی در چنان قوغا و اون جنگ و جدال عشق افکندش به سوز و وجد و حاله عشق وقتی پیدا شد نسبت به اون عالم عاشقانه از نماز دم همی زد از نماز اونجا میاد میگه آغا دلم میخواد یه نماز دیگه با شما بخونم وقت نمازی که میخواد بخونی چجوری نمازه حرفه میخواد مارو تو... دعا میخواد رو تو... تو اون عالم ببره میخوام از نهجالبلاغه استفاده کنم غیر از اینکه حاجت میخوای بالاتر بری تو دعا چی بخوای؟ ما رو ببر تو اون عالم. کدوم عالم جز خدا نبینی خدا دیدی چه میشه از اونجا به اینجا نگاه یه وقت از اینجا بالا رو نگاه میکنی. از اینجا بالا رو نگاه میکنی خدا را هم برای اینجا میبینی اما یه باید خدا رو نگاه میکنی از خدا به اینجا نگاه میکنی اینجا را هم برای خدا میبینی این چقدر فرق میکنه دعا میخواد ما خدایی بشیم نه خدا بشیم اشتباه نکنید. وای از بد وای از کمی معرفت خسته میشم بعدی وقت ها. کودن مذهبی خون به دل علی کردن. همون خبارج دیگران فهمه ببرید بالا معارف مکتب دینیتونو برید بالا اینقدر نحجل ولاغی میگه بفهمید درکتونو بالا ببرید ما ما میخوایم بشینیم یه گوشه یا الله در چه هدی حاجت همونی که صحیفه کافی میگه اگه خدای می میداشت تو این جزیره الفا رو میخورد دیگه قصه ای نداشتن اینه دیگه. بخ... تو خود کافی میگه امام صادق میگه اینکه عرضشی نداره ولی وقتی تو دعا چی و توجه میکنه میگه وقتی عشق پیدا میشه بر مبنای عشق واقعا این ها شمشی رو نمیفهمیدن روزه هاشو نه این که حرف باشه مگه قرآن نمیگه این حرفو قرآن بخونیم آقا این حرفای دراویش هست این حرف، حرفای دراویشه این حرف قرآنه مگه قرآن نمیگه در عشق مجازی وقتی یوسف رو دیدن اون ترنجو داد به دستشون با کارد دستشون رو بریدن نفهمیدن چرا چون از بس جذب یه زیبایی شده بودن زیبایی ظاهری قرآن نمیگه اینو وقتی جذب اون شدن درد نفهمیدن حالا اگه جذب عالم معنا بشیم چی میفهمیم؟ اصحاب ابی عبدالله جذب حسین بودن جذب خدای حسین بودن لذا شمشیر نمیفهمیدن واقعا. تیر نمیفهمیدم وقتی جلو عوی عبدالله وای میسه تیر از هر طرف میاد نمیفهمه تیر خورده یه وقت میگینه که بله آقا شما من چه بکنم توی عالم پست مادی منه بدبک باید توی این عالم ها مثال بزنم. شما بچهتون رو دوست دارید پدر مادرتون رو دوست دارید یه رفیقی که خیلی دوست دارید الان خسته خسته خسته تر از این من که واقعا خستم خسته خسته. توی تبقه سوم چارمیش دارید داریدی پایین نگاه میکنید اونقدر خسته اید که حال از پله پایین اومدن ندارید یه آقایی گفت که دوست دارم هنرپیشه بشم گفت خب چه نقشی گفت تو فیلما نشر بازی کنم فقط منو کول کنن یورور ببرم من نخوام را برم نخوام حرکت کنم حالا ما دی همچون نقشی تو طبقه سوم بازی کنیم یکی مارو کول کنه بیاره پایین حال پایین اومدن نداریم از بس خسته اید. بعد ببینی عزیزی که دوست داری پایین افتاده پا شکسته سرش خورد به سنگ کون داره خبران میکنه شما به جهت حبی که به او دارید دوستش میدارید هفتگی سرتون میشه؟ چجوریت برقی از لبو میاد با این شش تا پله با گلاجه ها یکی میپرید با. چی شد تکون خوردی؟ چون رفتی تو وادی حب حالا اگر حب خدا شد به دعا حب به خدا میخواد درست کنه یکی از اسرار دعا، اینقدر اذعان سالکه عبادی اگه از من سوال میکنن بگو من غریبم، من نزدیکم، از من نزدیکتر چی میخوای؟ از من بهتر چی میخوای؟ از من بالاتر چی میخوای؟ از من بهتری که بخوای عاشقش بشید چی میخوای؟ اون وقت این عشق که پیدا بشه، سرلوحه عشق به خدا، ابی عبدالله الحسین علیه السلام. تو قتلگاه زیر چکمه شمر زیر خنجر داره نقمه عاشقانه سر میده من روز آشورا براتون خوندم همه نوشتن و شمر رو جالسون الا صدره فزح کل عسري این داره میخنده به چی میخنده الالهی رزند رضاعی تسلیما لغزای لا معبود سواک عشق کار هر شیاد نیست این شکار دامه هر سیاد نیست عشقبازی را لیاقت لازم باید یه مراحل یکی از این مراحل دعاست به معنی واقعی کلمه اونجایی که با خدا دعایی که میکنی دهندره میکنی دعا نیست میخواد بره تو اون عالم ولی خسته نشید با دهندرم دعا کنید ولی بخواید بخواید خدا میخوام با تو انس بگیرم میخوام. اگر این انصفشه ببخشیده من نمیخوام هندونی زیر بقل هم دیگه بذاریم تعریف بی جام نکنیم میخواییم به کمک همه انشاءالله رو کنیم اونجوری که قرآن گفته لذا اگر تو حسینیه بیاد تو مسجد بره تو حرم بره حال حرف زدن با بغل دستی رو نداره همونجا میخواد یا قرآن بخونه یا گوش بده یا فکر کنه چرا گفتن مؤمن فکوره وزن خام اینا از من خواهر و برادرها توجه داشته باش. نمیدونم واقعا نمیدونم چقدر ماها عمر داریم چقدر میتونیم هر بار با هم دیگه بزنیم انشالله بزرگتر از ما برتر از ما میان بهتر برای شما توضیح میدن ولی یه مقدار شما را به جان عبید الله تو این جلسات به صورت عملی به کجا میخوایم برسیم اینا رو بگیریم دل خوش فقط میلیم تو جلسه ثواب خدا حفظ کنه یه اهل معنایی به من میگفت تو خیلی از سفرهای زیارتی ازشون نظر میخواستم میگفت انقدر چرتک دار چقدر ثواب بردی از کنار اینا رو ببین چقدر بالا رفتی خود میتونی بفهمی چقدر عوض شدی حال هواد حال هوای دیگه شد یا نه اینا رو ما تو جلسات میاییم حال هواد چقدر حال هوای با بغلدستی آقا فرشا کجاشون بودی چی خوردن چی گفتن فلانی از سفر اومد چی خرید بابا ما تو معنوی یا فکر کنیم چه کنیم به اون جایی که بناس برسیم هفت شهر عشق را اتار گشت ما هنوزم در خم یک کوچه ای اون وقت مولای من لاط امیرالمومنین صلوات الله و سلام علی و باشرو روح الیقین و سلامو ال المطرفون و آن سو به مشتو و سو و آنس دارم علاقه آنس ببینید مثلا فرض کنید در عالم مادی مثال بزنم، مادر بچه رو دوست داره پنج سال نبینه ده سال نبینه الان بعد از پنج سال ده سال به مادر بگی بچهت داره میاد سر از پا میشناسه آنس یعنی این دیگه امیر میگه اینهایی ای که روحشون به این یقین رسیده حجما حجوم آورده به اینها علم علا حقیقت البسیره اینا چگونن؟ آنسو به ما به یه چیزای اونس دارن که استاوهش منحل جاهلون آدم که این علمو ندارن این معرفتو ندارن به ایشتناخت ها نرسیدن اونا وحشت دارن از اینا میگه باشه شما وحشت لذا دیدید مثلا بعضی ها میگن آقا شما هرچی میخواید بخواید دعای نصف شب و چشم تری ما را بس ای؟ چشم تر میخوای هی نص... من که حاجت همو گرفتم دیگه اتیاجی ندارم نیست شب بیدار بشم میگه باشه شما حاجتتو تو بگیر بزا بد بدن خدایا آبد از تو هور میخواهد قصورش بین به جنت میگوریزد از درت یارب شعورش بین نعمت جنت بله ها را دهن جنت اشاغت و, و سیمایتوست لذا آنسو به ما استوحشم این الجاحلون اونایی که به اون معرفت نرسیدن وحشت دارن اینایی که به این مقام رسیدن بهش اونس میبردن و صحبو از دنیا به عبدان ارواح ها معلقتن بالمحل الاعلا دقت بکنید و صحبو اینا سو مصاحبت میکنن، معاشرت میکنن، رفت آمد میکنن، انس دارن با مردم، از دنیا تو دنیا، از بدن، اینا جسمن با مردمن و ارواحها معلقتا بالمحل الاعلا، اما روحشون به یه جای دیگه آویزون شده، دعا خدای این کارو بکنه. دیدید؟ در همین عشقای مجازی بعضی وقتا میگه اینا دیوونن ما داریم باش حرف میزنیم، اون یه چیز دیگه با خودش میگه، بله، یه چیز دیگه میگه. چون جای دیگه است فکرش جایی دیگه است لذا و اگر این که کرم بگم یک بزرگی که من به بزرگیش ایمان داشتم واقعا کار کرده بود تو خودسازی نقل کرد که یکی البته من به واسطین ارزم کنم یکی از دوستان ما نقل کرد که اون بزرگ برای من گفت من یه وقتی میخواستم توی جلسه حاضر بشم خیلی حرف زریفه توی جلسه میخواستم حاضر بشم از منزلم راه افتادم احساس کردم یک کمی باید پیاده روی کنم برای حالم لازمه تاکسی نگرفتم سه چهار کیلومتر پیاده تا اون جلسه راه بود من حدود سه کیلومتر اومدم یه دفعه متوجهتم شدم جورابم رو لنگه به لنگه پوشیدم مثلا حواسم نبود مهم نیست میرم جلسه بعد اون بزرگ پرموده بودم اما حالا اگه بودی سه کیلومتر رو بر میگشتم جورابم رو گر من برای اون سوال شد خب بیانید موضوع مهمه خب اینا که غرقی عالم دیگه هم توجه جوراب ندارن چیه؟ دقیق کنید گفت یه وقت از دیده پایین نگاه میکنید مردم بدشو نیاد من جورابم مرتب باشه لباس رو مرتب باشه چنین این گرفتار مردمه هیچ جرزشی نداره یه وقت اونقدر غرق خداش اینجا رو توجه نداره حتی توجه نداره که جرابشو لنگه به لنگه یه وقت با خودش میاد میگه مردم هرچی میخوان بگن بگن از پیه رد و قبول آمه خود را خرم کن چون که نبود کار آمه جز خری یا خرخری خری از دن شمارند از خری این ابلهان نوح را باور ندارند از پیه پیغمبری اما اون مثل سوم اگه حالا بود برمیگشتم چرا و وقتی او نگاه میکنی از دید او بی آلم نگاه میکنی او حکیم همه عالم حکمت داره اون منظم همه عالم رو نزم بخشیده. او بی حساب توی عالم قرار نداده. چون او بی حساب قرار نداده منم منظم میشم. به. چقدر یه حرف از اون علی بالا حالا اون رو نگاه کنم از اون دید اینجا رو نگاه کنم از اون دید بخوام اینجا رو نگاه کنم مرتب منظم دقیق چون او مرتب و منظم کرده عالم رو در عالم حساب چیزی قرار نداده پس من از اون دید به این عالم نگاه کنم نه از دیدی که مردم چی میگن او را میبینم او بدنش با مردمه روحش با اونجا چه بکنیم روح اونجا بره یکیش دعاست اما چگونه دعایی معنای دعا توجه بشه این تیه که نحجل رو کار کنی توجهی بیشتری بکنی یکی که دیگه با از خطبه دویست و دوستانی که تو دانشگاه شریف بودن اون زمانی که شرح نحجل بلاغه تو دانشگاه داشتیم این خطبه رو من تو دانشگاه شرح کردم مفصل نوارش هم اینجا موجوده لذا الان شرح نمی کنم فقط اشاره می کنم خطبه دویست و بیست الله سبحانه دعا میخواد ما رو بکشونه به سوی الله دیگه و دعا بریم به سوی خدا خطبه دویست دویست چیه؟ فی وصد سالک سالک تریغ الالله اونی که سالک تریغ الالله میخواد تو تریغ الالله سیل کنه بره بالا امیر المؤمنین داره اینو وحس میکنه چگونه وحس کرده؟ قد احیا اقلهو و امات نفسهو حتی دق جلیلو ولتو و و برق له لام اون كثير البرق صعبان له الطريق ببینید طریق مال این عالمه اما قد احیا عقله و اما حتی حتی دق جليله و لثف غليظ یعنی اول میره تو اون عالم از این سیر من الخلق الی الحق اون سبا پروردگار این ناخالصی ها رو زدودن لذت ها رو بردن که تعبیری اونجا به کار بردم اگه رفقا باشه حد ولث و گفتم بهترین تعبیر رو من از یک شارح نهج البلاغه دیدم دیدم قشنگ معنی کرده او میگه شما این خراتی رو دیدی وقتی میخوان مثلا چوب و کنن یه چیز زینتی قشن زبری داره هی رنده میکنن سماده میکشن چه میکنن بر میکنن یعنی یه ذره زبری هم داره دست میزنه اینا رو میزنن در راه الله هر چیز مختی از خودش دور کنه رو دور کنه هی خودسازی کنه خودسازی کنه به اینجا که رسید حالا از بالا برمیگرده به پایین عبان الله الطريق وسلك بهش شبیل حالا دیگه این راه براش مشخصه که چجوری باید حرکت کنه پس تطافت اول ابواب اله باابش السلامه از این در به اون در از اون در به این در ولی وقتی رسید با اونجا از اونجا که میگرده میگه باب سلامه رو پیدا کرده دیگه میدونم چه کار باید بکنم آقا چی میگه بسا بگم تو راه تو بگی برو جلو خب این ارزش نیست که حالا خلاصه ارز کنم انسان به اونجا برسه دقت بفرمایید مثال زدم جسم در عالم جسم انسان تو هوای سالم تنفس کنه خب، خبیه ها سالم تره یه هنجرش سالم تره این کیفیت حالا از نظر طبی آقای باید بگن حتی نشاط ظاهری چهره نگاه میکنی بشراشتره این داره آب گبارا میخوره خب معلومه حالا تو عالم روحی تو هوای الهی داره سیر میکنه چی باید ما رو ببره تو هوای الهی یکیش دعا لذا گفتن مثلا شما ده بار بگید یا الله ده بار بگید یا رب سه بار بگید یا و والاکرام شش بار بگید یا کریم این همه روایات میگو من دارم چرا؟ مثلا گاهی ممکنه طرف یک بار بگید یا الله اصلا زیر و رو بشه همه یا باید یه بارم صد بار میگه یا الله این اللهی ای که از لفظ برمیخیزه اون اللهی که از اعماق جانش برمیخیزه میگه مراحلی رو پشت سر بذاشتم. این در و اون در زدم سوختم تا به این معنا رسیدم که از اعماق جانم بگم یا الله یعنی هرچه هست تو نیست تویی و هرچه هست تجلی تو منهای تو که معنی هو با تو بگویم که چیز اوستگر دگر این من تو هیچ نیست کم کم به اونجا ها میرسه لذا وقتی میگه تمام وجودش به لرزه در میاد اینه باید با تمرین دعا و وقت وقتی به اونجا میرسه میگه وقتی امیر المؤمنین علیه السلام را دیدم تو های مدینه تعبیری که حدیث داری اینه مثل ماهی که از آب گرفتی میخواد جون بده چجوری اینجوری علی داشت اومدم در خانی از زهرا سلام علیه ها در زدم بیبی جون علی چیشه داره میمیده فرمود چی بود گفت تو نخلستان ها ناله که اون حال مناجات علیه به تو حال خودش باشه با حال مناجات علی. همینجه اشاره کنم از حدیث خوندن خدا تو رو به جان علی تو رو به مقام علی تو رو به اون معرفت علوی تو رو به اون دعاهای علوی ما را در مشیر معرفت خود. عشق به خودت حرکت صحیحه به سوی خودت یاری منده فرمار مخصوصا هفته هفته امیر المؤمنین هفته قدیره دو شمبن ولادت امامهادی علیه السلامه دیشب تو مشهد جلسه برای دانشباه یادشتیم جاتون خالی اشاره کردم گفتم در جوار امام رضا ایام قدیر من چیزی نمی فقط میخوام اینقدر بگم به شما خدا فیاض علل اطلاقه حالا اگر عمری بود شب جمعه آینده این بحث رو اینجا ترحیم میکنم این شعال. خدا فیاض علال اطلاقه همینجور داره فیض میده خدا آن فیضش قط نمیشه ولی با قرآن با روایت با گفته خود خدا ما میتونیم یعرفو بزنیم که هیچ فیضی از فیض خدا این از فیض ولایت ولی الله نیست لذا به این فیض که میرسه میگه اطمان تو علیکم نعمتی هفته یاد بود فیضان فیض بگیرید ما بحثمون ایام راجب دعاست شب جمعه آینده میخوایم خواهیم بحث وقت کنیم بریم تو اون برس اما خوش به حال اونا گرفتید برای ما هم بگیرید یکی از این جوان های خوب دانشگاهی که دوست شم دارم جلو حرم دست هم گرفت تو رو خدا بگو چی بخوام شکارم. بسن من بزرگا به ما یاد کار ما اونی که یاد دادن بهت میگم برو جلو زری حضرت واسو بگو آقا جون از خودت خودتو میخوام خودتو میخوام خودتو میخوام خود یعنی چی خودتو میخوام اینو بفرما هم شما کی هستید خدا شما رو چه مقام قرار داده نه اینکه فقط بیام جلو زری واسم یا امام رضا قرض دارم یا اینا رو مطرح کنید اد نداره من نمیخوام خوشک مقدسیه از اون رو در بیارم ولی در مرحله اول رو خودت خودتو میخوام خب خود خود دیگه چی بخوام گفتم اینو بزرگا گفتن من میگم من که بچه تر از این این نرفه رو بفهمم بگو آقا جون شماها یه عده اصرار دارن خودشون رو به شما میچسبونن بالاخره شما جوابشو نمیکنی یه عده شما اونا رو جدا میکنید میخرید آقا کاری کنید ما از اونا باشیم که ما رو میخرید ما رو بخرید خب اینا کیا رو میخرن نوریان مر نوریان را طالبان. نوریان مر نوریان را طالبان. نور که ظلمت با او جمع نمیشه حقیقت معرفت که با جهالت جمع نمیشه یک قدم برای وادی نور رفتن اومدن تو وادی دعاست دعا رو با این چشم نگاه کنید خضا و سعالکه اوادی انی سعلمی غریبون اجیب و دعوت اددائه ازاد دعان لذا اومدن گفتن حالا که میخواید تو عالم دعا بیاید اون هفته به مناسبت بحث کربلا اشاره کردن وقتمونم زیغه خیلی طول نمیدم تیام مونن و تبر رو کنم بعدی این قسمت های روایت رو حالا بخونیم بقیهش رو برای جمبندی الله در آخرین جلسه زلحجمون که هفته بعد ارز کنم یکیش که هفته قبل به مناسبت بحث کربلا اشاره کردم الان یاداوری میکنم رد میشن زیدن، ورزیدن اسرار ورزیدن مصر بودن و خسته نشدن آقا دستگاه الهی سنت خدا رو میفهمه تو عالم اعمال میکنه ما سلام فرض بفرمایید الان شما کارکونه تصفیه فلان میسازن کارخونه مثلا فرض کنید که ایجاد فلان مواد غذایی، اینا میان اون که خدا در نظام عالم قرار داده از او سوژه میگیرن ولی میارن تو عالم ماده و طبیعت و اندازه توان خودشون با این دستگاه های این دارن اعمال میکنن توی این جنبه های معنوی قضیه هم همینطوره دقت بکرمایی مثلا شما میبینید در وادی معنوی حتی در وادی مادی تو عالم ما فیلم یکی که همچین سنگ مفت گنجش مفته شما میگید خیلی همچین دلش هم لک نزده برای این قضیه گیرش اومد اومد نه اومد خیلی خیلی نمیارد و برای این وقت بذارم اما یکی مصر ویل نمی کنه. چه تو وادی معنوی باشه اون راهنمای معنوی میگه این میخواد دخشت از طلب ندارم تا کام دل برای یا جان رصد به جانان یا جان به درآید. این مصر بودن نظامیش که خدا بر عالم قرار داده که ما تو آلم داریم اعمال میکنیم لذا یک در دعا مصر بودن شب پاشو دعا کن صبح پاشو دعا کن تو حرم دعا کن تو امامزاده دعا کن تو مسجد دعا کن تو حسینیه به جایی که با هم دیگه شنی حرف دعا کن تو راه داری میری با خود دعا کن این دعا فقلی نیست که خیلی عزم میخوام خیلی عزم میخوام من یک کمی که گایم یه چیزی حالا، حال عوام هم، تو عالم بی ادبی رفتم رفت منو ببخشید هی پس پس پس, پس, پس کردن نیست که بعضی وقت اون گفت که صوت صلواتش الله مست الله یجوری بشه تونم به عنوان دارم ذکر میگم خداشونیه بندی. خدا ایام عید عید نداره و یه آقایی توی اتوبوس نشسته بود و آقایی که زن و مرد قاطی سوار میشدن خیلی هم خوش که مقدسی در می آورد و آدمای بی که بودن حجابا اونایی که خیلی بدریافه بودن میومدن تو اتوبوس سوار میشن میگم که لا اله اونایی که خیلی خوشگیافه بودن نگاه میکرد الله اکبر رونودم فهمیده بودن آقا آقا چند تو الله اکبرم داره میاد حالا ذکر توی این وادی نه یا نه حتی؟ حالا میخواد سادس و دعا کردن به همون معنایی که آقا پشت اتومبیل نشستی از اینجا داری میری خونه صد داری میری سر کلاس چند لحظه بیکاری همون لحظه ای بیکاری خدا منو با حال خودم رها الهی الہی لا تکلنی الانا فسیتر فت عین العباد اما توجهش یعنی چیا زبان نباش یعنی بسهمم گاهی وقتا خدا ما رو دوست داره ما صادقانه میخوایم میاد ما رو میندازه توی یک وادی به اونجا میرسی میبینی مثلا مشکلی داری حاجتی داری هرکی هم میخواد کمکت کنی هیچ کاری ازش بر نمیاد مخصوصاً خدا گایی میندازه توی این مثل اسفند رو آتش به پری نه خودت میتونی کاری بکنی نه همه قدرت هایی که تو رو دوست دارن میتونن کاری بکنن اونجاست که از اعماغ جان میگه الهی و ربی من لیغی و حالا بیاد دای کومل بخونه. از اعماغ جانش میگه لمس کردم چشیدم الاری و ربی من لی غیر و تو من که میتونم داشته باشه الهی لا تکلنی الاه نفسی تر فیطه این ان ابدا وقت اون میشونست گفته ای پیغمبر اسلام در قوجش شما به اندازه ای که پیرو پیغمبر اید. ام مسالمه میگه پیغمبر تو حجره من بود نیمه های شب دیدم از حجره خارج شد نگران حال پیغمبر بودم دنبالش رفتم دیدم که تو مسجد و سر به سجده نهادن و این ذکر رو میگن مینالن صدای گریه پیغمبر بلنده با این ذکر الهی لا تکلنی اله نفسی ابدا از گریه پیغمبر من به گریه افتادم گریه من ها پیغمبر شنیدن برگشتن اون مثلا اینجا چه میکنی یا رسول الله نگران حال شما شما چرا فرمود اگر آنی شو از ما هیچیم اگر نازی کند از هم فروری زد خالبها این رو بفهمیم لذا مصر باشیم مصر به چی؟ خدای ما رو رها نکن خدای دستمون رو بگیر خدای ما رو تو وادی خودمون ببر خدایا نفسم ما رو بیچار هم میکنه یک در دعا مصر بودن چون رو خوندم اجازه دیگه تکرار نکنم دو فقط در مشکلات خدا رو نکنیم حالا حدیثشو براتون بخونم چقدر زیباست اصول کافی جلد دوم عربی شو ازم کنم صفحه 472 حدیث 4 و 5 رو سری میخونم رد میشم قال ابو عبد الله علیه السلام امام فرمودند بسلاوات را ادا فرما امام صادق علیه السلام فرمودن, فرمودن. فرمودن. ان دعاء یستخرجل حوائج فلبلا دعا در موقع آسایش و آرامش و بدون گرفتاری بیرون میکنه گرفتاری ها رو در موقع برابرده میکنه حوائج رو در موقع بلاها یعنی اینجوری نباشه که انسان وقتی به یه بلای مبتلا شد بیاده خدا بیفته حالا چکه داره واقعاست میشه یه وقت قم مشرف بودیم نارش ذریه بنده خدای حال خوشی داشت اشکی میریم من به یک از دوستان که اهل معناشی کمیام او ظاهرا چشم دلشو بازه ولی ما که چشم سرمونام بیه نکی نمیبینه ما توجهی 알파 نبودی من گفتم حاجو ببین کوی قرض داره اومد اینجا حالا برو سوال کن ببین حس یا نه من رفتم جلو حاجو حالت چطوره فلان ما رام دعا کن گانه دعا کن یه قرض دارم اومدم اینجا میگه خداحافظ از زبانش درآمد اومدم گفتم حاجو راست میگه قرض داره عیب نداره اشتباه نشه فقط قرض داریم اشکمون نیاد مهمتر از قرض داشتن جدایی من از اوست مهمتر از بیماریم روحم با او اونس نداشته باشه اینا رو باید توجه پیدا کنیم حدیث چهارم قال صادق و علیه السلام من سرهو سر انی یستجابلهو فشده فلیک سرد دعا فرخا اگر کسی میخواد در گرفتاری ها به توجه بشه باید در حالت آسایش دعاشو زیاد کنه انعبی عبدالله علیه السلام حدیث شماره پنج قال کان جدی یقور امام صادق فرمود جد من زیادین رو میفرمود کان جدی یقور عبارت و سبک حدیث رو ببینید تقدمون فرد دعا سعن العب ازا کان دعا فنظل بهی بلا فدعا قیل سوتن معروف و ازالن یکن دعا فنظل بهی بلا فدعا قیل اینکن تا قبل الیوم چقدر قشنج حدیث تقدر کنی؟ پیشتسی کنی در دعا کردن زیاد دعا کنید فا این نل عبد ازا کان دعا وقتی بندی زیاد دعا میکنه فنزله فن به البلا اما حالا دیگه یه بلایی هم براش نازل شد صد دوباره داره دعا میکنه قیله گفته میشه فرشته ها صوت معروف این صدا ناز، این همیشه دعا میکرد این قبلا هم این صوتو داشت و اذا لم دعا اما نه زیاد اهل دعا نیست زیاد با خدا این ارتباطاتو نداره فنزله فن بهی بلا فدعا فد حالا گرفتاری تا پیدا کرد، شروع میکنه دعا کردن قیل گفته میشه فرشته های هم میگن ای هم تا قبل از کجا بود حالا؟ ما تعالی شده این آقا رو اونو اون قضیه معروفی که بار عرض کردم یه بنده خدایی اومد پیش پیغمبر یا رسول الله و ازم بده دعایی بفرمایید حداسر بود الله قانع باشید آه، دعا کنید هستم سرمون دوام می یه سرمایه به من بدید برای کارم حضرت یه دو درهمی به ایشون دادم ایشون رفت و یه طبخ خرید و اومد و خرما فروشی می کرد در فروشی کم کم کارش گرفته شد یه دکه بعد شد یه مغازه و این دفعه شو صادرات و واردات هر چی که کارش بالا میرفت نماز جماعت کم تر می اومد اولا روز مرتب صف اول پشت پیغمبر کم کم صب دوم و سوم سو و خارج شد یه روز پیغمبر از جلو مغازش اش رد شد کارگرها و عبل خرماها رو میبندن و با کشتی برای فلان جا بفرستیم با هواپیما برای فلان جا بفرستیم چه بود چه می فلانی آ یا رسول شما بله کجایی آقا وقت ندارم سرمو بخورونم هر مورد اون دو درهم ماره بدید یا بیشتر هرچی نه دو درهم ماره بدید دو درهم رو داد کم کم کار سبق شده سبک شده دیگه کار نمی گرده. این دفعه دید از 4 چارم 5 اومد سبق. یا رسول الله پذیم عرض کردیم شما که تالا کجا بودید آبا بود بعضی یک کمی تو دنیا میرن خدا فراموش میشه دعا در همه حالات تمرین کنید لذا حتی روایات. هر دنیا به شما بیشتر رو میاره بیشتر دعا کنید بیشتر گریه کنید بیشتر تواضع نشون بدید مفاهیم دعای مکارم الاخلاق رو بخونید مفاهیم دعای عالیه تزالمزامین رو بخونید لذا اسم گذاشتن دعای عالیه تزالمزامین دعای مکارم الاخلاق امنی بو است و اتم من مکارم الاخلاق تو دائمیه کارم الاخلاق یک خدایا کمکم کن هر چی در نظر مردم بزرگ جلوه می کنم پیش خودم خودمو کچکتر ببینم چه کسی خودشو کوچک می بینه وقتی در مقابل خدا شما صبح تا شب صد نفر بیان تظیم از که ادم قربان حال شما چطوره چنین چنان اما برو یه وای شکلی بروی یه گوشهی فرش بزن کنار سبت و بزن رو خاک الهی عبید و کبه بابک حوی رو کبه بابک زلیل رو که به بابک مسکین رو که به بابک اینو با اعماغ جان بگی باید به معناش توجه پیدا کنید. خدایا بی تو من چیم بابر داریم یا نه؟ اینا بحث رو قبلا من دارم یادآوری میکنم شما نظر استدلال عقلی که راحتی معنا را رو قبول دارید ممکن بدون ربط به واجب چی؟ اصلا ممکن این ربطه ممکن غیر ربطه هیچی نیست به قول بزرگان معنی حرفی دارن نه معنی اسمی و فعلی. هر بدون ارتباط با اسم و فعل که معنا فیدان نمی کنه. من بدون تو هیچم وقتی بدون تو هیچم حالا یه عده میگن قربان شما چنین چنان من با خودم قضایت کنم من که هم من بی او که هیچم و یه آن به قادر نایات از ما برداره که ما هیچیم لذا در همه حالات باید این دعا باشه به خصوص وقتی یه مقداری امکانات رومیاره ارتباط معنوی بیشتر بشه شون. دنیا گل میزنه. شاگرد اول شدی. عکست تو روزنامه انداختن و لوح تقدیر دانشکده به داد. اونجا برو بیشتر سجده کن. یه مقاله نوشتی ممتاز شد. اون چند شب بیشتر صورت رو خاک بذار، نکنه دور ورزدی. اینه سوم. سعی کن رقت قلب پیدا کنی و حالت خلوص در تو زیاد بشه. هر چه قلب بیشتر شد استجابت دعا بیشتره و حال ارتباط معنوی نشون میده داره برقرار میشه اصول کافی جلد دوم صفحه 477 حدیث شماره پنج فقط از نظر اشاره و تایید وگرنه روایات رو خودتون بخونید زیاده دیگه وقتم زیغه اشاره کنم باز ان ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق فرمودن ازا رقع احد کم فلید. وقتی یکی از شماها ها رقعت پیدا کرد دل شکست هر چیزی میشکنه بیاردش میشه الا دل که میشکنه که رنبه میشه الهی سینه ایده آتشف در اون سینه دلیوان دل همه سوز هران دل راو که سوزی نیست دل نیست دل بی سوز غیر از آب و گل نیست دلی که امام صادق علیه السلام میفرماده ازارت بعدكم فليدا وقتی که ذقت درد پیدا کردی حس کردی دلت به همین جهات ارزش روزه امام رو بدونید معمولا با ذکر مسائل عبداللہ دل نشکنه با یاد مظلومیت اهل بیت آدم دلش به درد میاد با توجه با اولیای الهی لطافت قلب حاصل میشه فَإِنَّ الغلبه همانا به درستی که قلب لا یرق و حتا یخلص رقت پیدا نمیکنه مگر اینکه خلوص در او ایجاد میشه قلب رققت پیدا نمیکنه و قلب خالص چیه حرم الله ولاتسکن حرم الله غیر الله قلب خالص یعنی غیر خدا توش نباشه دعا اونجاست که دل به خدا داده بشه کی دل به خدا داده میشه وقتی به قل پیدا بشه یکی این سوم سه، سه یا چهارم اگه سوم بود چهارمی رو بخونم اگه چهارم بود پنجمی دستور دادن سعی کنید در بعضی موارد داره تنهایی دعا کنید اونو بعد میگم اما داره که این قسمتی که راجبه دست جمعیه بیایید تو جمع دعا کنید شاید خدا به عنایت یه دل شکسته یه قلب خالص یک عشق صادقانهی که از یک چشم در جم جاری شد به بقیه‌ام توجه بکنه صفحه چار سد و و هفت حدیث شماره سه امام صادق علیه السلام فرمودن کان ابی علیه السلام امام صادق فرمودن بابام اینجوری بود ازا هزنه او امر او حزنه امرون وقتی یه امری او رو محضون میکرد یه غذیهایی پیش میومد جمع نسائ و ثم دعا و آمن زنا رو جمع میکرد در رو جمع میکرد یه رو میشون میفرمود که حالا من دعا میکنم شما دست جو آمین بگید امام که خدا به خاطر این جمع یک انایتی به بقیام بکنه لذا در نماز باران مخصوصا دستور داده شده بچه ها رو جلو بندازید پیر مردای ریش جلو بندازید پیر رو جلو بندازید اونهایی که حالت شکستگی بیشتری دارن اونا رو جلو بندازید اونا دعا کنن شما پشت حالا اگر باران نمیواره ما مشکل داریم اینجوری گفتن ناله بزنید اگر دل ما قصی شده باشد و این زمین سفت شده نیازه به ریزش باران انعایت الهی داشته باشه اینجا چقدر باید دعا کنیم وقت اینجاست که انسان اگه احساس کرد تمام وجودش رو حالا من میخواستم از امام حادی علیه السلام که دوشنبه ولادتشونه چیزی بگم وقت اجازه نمیده فقط یه اشاره بکنم انشالله حاجه های غفاری ما رو به پیج برسونن و امیدوارم حال دعا در همگی ایجاد بشه و از همه میخوام دوعا کنید دوستانتونم دعا کنید دایی دست جمعی کنیم که خدا روح ما را روح عالم معنا بکنه قلب ما رو تو عالم معنا ببره امام حادی علیه الصلاه و السلام ببینید حالا اینا فرصت میخواد من فقط اشاره می شما خودتون اهل پزل و مطالعه اینو بگیرید سبک امام شناسی از امیرالمومنین شروع کنید را بیاید به امام صادق از امام صادق شروع کنید تا امام رضا از امام رضا شروع کنید تا امام هادی این سوژه ای تحقیق وقتی میخوان امام شناسی رو تو نهج البلاغه و خطبه هاشون بیان کنن حتی در زمان خلافت ظاهریشون که قدرت هم دسته ایشونه میگه که آیا ما رو با معاویه مقایسه میکنید ما چنینی ما قوی ما بالا تاریم. یعنی هنوز مردم تو مقام مقایسه احلا بیت با بقیه هنوز کلاس اول اتدائیه حضرت میخواد اینا روی که من کلاس بیاره بالا آمادگی نداره بگه من کیم لذا اگر میگه من کیم هم مثل خطبه شخشقیه لقد ابن ابي قحاف و وانه يعلم ان معلمها محل القطف من الرهاين حدرا ان ولا اگر این را می فرماید می فرماید شخش قدم قد هر درن نیست اینا رو بگم <تصفح> <تصفح> <تصفح> یه ایست که از زبان من خارج شد یعنی هنوز آمادگی شنیدن یعنی ولی امام صادق یک کمی بالاتر میاره. میگه شیعه اگه گفتم برو تو تنور باید بری این معرفت بیاد امام رزا علیه السلام. امام اون حدیث امامتی که امام رضا مطرح کرده تو کافی هم هست تو تو هفه امام اینه امام اینه یعنی کلاس هم اومده بالا و وقت امام حادی تو زیارت جامعه وقتی رسید به اونجایی که کلاس ها تی شده اونایی که بناس بیان رضا میاد امام حادی علیه السلام تو زیارت جامعه وقتی میخواد امام رو معرفی کنه میگه برو جلو امام واسا بگو بکم وکم فتح الله و خلقکم الله انوارا به بارشهی محتقین حساب الخلق علیکم و ایابهم لتی انذکر الخير کنتم اصله و فرعه و و او یعنی چی یعنی شما اینو امشب به امام هادی السلام عرض کنید یا رسول الله شما به ما یاد دادید ما ان شاء الله این معرفت رو پیدا کردیم تعبیری غیر از این بلد نیستم شما همه کاری دستگاه خدایید ما به بسیار خدا بریم شما همه کاری دستگاه خدایید میخواییم دست ما رو بگیرید ما رو بسیار خدا ببرید شمایی که چجوری دل میسوزندید برای اونایی که بخوان این قضیه رو بگم دیگه من ایام ایده اجازه بدید روزه نخونم مجلس رو با جای غفاری ولی گفت که مادر متوکل متوکل خونخار عباسی که معلوم. مادرشی کمکی روی کار معل هر چند رخیه بار از پول پسر کش میرفت میداد برای کارهای خیلی زرنگیست دیگه واقعا وزرو ووال متوکل میبر او که مسیر خیلی خرج میدن این رنگی واقعی این هست یه <تصح> <تصح> دفعه یک رقم بالای صد هزار دینار خیلی پول بود <تصح> اینه گرفت و یکی از مهمورینه که به اعتماد داشت اتفاقا نیش بود <تصح> داد به این که ببر تا قروب بین فقرا تقسیم کن بیا این تا زور هر چی تونست و رقم خیلیه پونسد هزار دینارشو خرج کرد از پنجا هزار دینارشو خرش کرد پنجا هزار تومان همسایه ای داشت شیعه و سید اومد پیشش با فلانی شنیدم مادر متوکل پول زیادی به داده بگو بله من پسر زحرام سید بود من اولاد زحرام فقیرم شیعه هم تو هم که میشنسی یه کمکی به من بکن رفت یه مقداری از این پولشو بده. خانمش از پشت پرده اندرون گفت از حضرت زهرا خجالت نمی کشی بچه اومده درمه تو موقع بده همه بده بهش بره این احساساتی شد همه رو آورد داد به این بچه سید این رق اومد اندرون وقتی احساسات فرونشه است خبه کاری کردن اگر متوکل بفهمه من پنجایزار دینار از پول او رو یه جا به شیعه سید دادم خونه رو سرم خراب میکنه. متوکل کسی که قبل ما موسیقی خراب کرده شخم زده اگه رحم میکنه به کسی به زنش گفت چه کردی سرم رو به باد دادی زن گفت نترس بیا نماز بخونیم متوصل بشیم از زهرا کمک بخونیم اینا اینجا مشکل نماز شد از اون طرف اون آقا سیه پول برداش رفت خونه خوشحال قرض مونه گرفتاری منحل شد یه دفعه رو کرد به همسرش گفت را سی احساسات که اگر متوکل بفهمه این همه پول یه جا آوردن به ما دادن ما چکار کنیم اونام ترس برشون داشت گفت بیایی متوصل به جده من از سلام الله سلامالله علیه ها بشیم که انایتی بکنه مشکل ما حل بشیم اینا مشغول دعا شدن اونام مشغول دعا شدن حالا این از وسط روز یه مقداری به اصل رسید در این بین مادر متوکل بعد از ظهر خوابیده بود گفت که تو عالم خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیه ها تشفا بردن. به من فرمودن که این پنجا هزار دینار که رسیده من راضیم و اگه میخوای راضی باشم باید پنجا دینار دیگه به همین فرق بدی از خواب پر این دینار رو به کی دادن؟ حالا از اون طرف اون رفته خدمت امام حادی علیه السلام از امام حادی خواسته براش دعا کنه امام هادی هم دعا کرده که حالا تو درگاه مثل متوکل کار به کجا میرسه این فوری فرستاد برید این معمور منو بیارید معمور با همسرش داره دعا میکنه متوسل شده گفت که مادر متوکل پیک فرستاده که الان بیا به زنش گفت دیدی خبر رسیده فهمیدن دیگه معلومه که باذ بریم کار ما تمامه بزنش گفت من وصیت هامو میکنم من برم گذنم میزنن دیگه حالا من به خاطر از زهرا کردم هنوز از در خونه بیرون نیومده پیک دهم بود چرا نمیای مادر متوکل با شما کار داره یقین کرد همین که وارد کاخ مادر متوکل شد تا چشمش به مادر متوکل افتاد گفت 50000 دینار رو به کی دادی خودی همه چیز رو میدونی دیگه گفت مموریین گزارش دادن تا راه پس بزنه گفت از زهرا سلام الله علیها فرمودن 50000 دینار دیگه باید او بدی تا راضی بشه بیا این 50000 دینار دیگه رو هم بردار ببر دیگه نفس کشید پنجه دینار گرفت اومد رفت سر راه خونه نرفته رفت در خونه اون آقا در زد تا در زد آقا سید از پشت در گفت ها پنجه هزار دینار دیگه آوردی؟ گفت تو از کجا میدونی؟ گفت مام الان در حالت ترس و لرز بودیم خوابمون برد جدم هم زهرا سلام الله علیه ها را خواب دیدم به من فرمود نگرون نباشت مام موازه بتونیم یبن رسول الله شما یه اشاره کردی مادر متوکل از این رو بانرو شد و فرمودید موازه به هستیم ما هم امشب با دلی شکسته در این ایام شادی میخوایم بگیم شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیه یک توجهیم به ما کنید هوای مارم نگه دارید الله علیک یا مولای یا علی ابن محمد ای الهادی ابن رسول الله یا حجت الله على خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا الله و که بین یدی حاجاتنا یا الله الله اشفا لنا الله و السلام علیکم و الله